بسم الله الرحمن الرحیم 11 همه مهر 401 درس خارج و حصول عزت آیت الله رشاد جلسه 991 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة على رسول الله وعلى آلئه آل الله واللعن الدائم على اعدائهم اعدائ الله الى يوم لقاء الله الهی هبلی کمول نقتان الیک و ان الابصار قلوبنا ببیا نظرها الیک تخرق ابصار القرو حجر النور وتصل الام معد معدممة فصير اخنا محمد این هواد که این ایام اتفاق افتاد نکات مختلفی قابل بحث که مرتبطه با کارمون ما نباشه اما یکی از مسائلی که جلب نظر کرد اینکه ما شرایط امر به معروف و نحی از بونکر رو دقیق و درست تلقی نکردیم و این دو فریضه بسیار پراهمیت رو ناقص اجرا میکنیم و گاه ممکن است که نه موجریان عامران و ناهیان و نه کسانی که مورد امرو نه قرار میگیرند با قواعد این دو فریضهٔ بسیار پراهمیت آشنا نیستند بخشی از مشاجرات و چالش ها ناشی از این نقص است و در این میان البته حوزه تكلیف خاص خودش رو داره قضیفه حوزه است که این جهاد رو تبیین کنه و تعلیم بده و حتی جامع رو بر اساسه اون تربیت کنه و برقم اینکه می میتوان گفته حدودی فرصت سوزی شده بعد بر چهل و دو سه سال ما هنوز بسیاری از فرائظ و از جمله اونها همین دو فریضه بسیار بسیار سرنوشت ساز مسئله امر به معروف و مسئله نهی از منكر انچنین که باید احتمام نکردیم و انجام وظیفه نکردیم نوع دستگاهها در این قضیه کوتاهی کردن و غالبا فراتر از حد قصوره در حقیقت تقصیر شدند اما به هر حال باز باید به جبران اندیشید و در مسیر جبران کوشید یکی از اونها همین است که ما مسئله امر منکر رو در دستور کار جدی حوزه قرار بدیم دستگاه های زی ربط و زی دخل هم تن بدن به برنامه حوزه و جا من از زبان همکارانمون در حوزه آسنه اعلام آمادگی میکنم به همه دستگاه های زی و زی دخل که ما در این زمینها ها نه تنها فقط در مسئله امر به معروف نهی از منکر بلکه در خصوص وضائف دستگاه ها و مباحث فقهی و احکام مرتبط این وظائف رو به نهب فنی و کاملا اساسی و به طور جامع و دقیق طراحی کنیم مثل ترشده های علمی اجراع کنیم و نوتو بیهیم که دستگاه های مسئول محتاج و نهادهای زی ربط زی داخل هم در کنار حوزه پایکار بیان هم الان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیج مستضعفین، همه دستگاه های زیره اپس رو من عرض می کنم، میکنم می میکنم و از ناحیه حوزه حوزه آسمه علامه آمادگی میکنم که آمادگی هر گونه کمک و هر گونه همراهی و همدلی با نهادهای مسئول در این زمین ها هستیم بید رشته کرد دیگه فقط بحث فق نیست مهور فقه ولی انواع علوم و موادی که باید عناصر زی رفت و زی دخل آموزش ببینن در رشته دیدهشی خب ما امروز وارد بحث جدیدی داریم میشیم مبحث نواهی رو به پایان رسوندیم هرچند که در تمام مباحثی که وارد میشیم برغم اینکه نسبتاً به تفصیل ورود میکنیم در نوع مباحث اما باز جهات نکاتی هست که باقی میمونه و میتوانست اونها هم مورد مردوست قرار بگیره ولی خب دوره خیلی طولانی میشه بر اساس اون مبنایی که عرض کردیم درس خارج در واقع دوره پژوهش هست نه دوره آموزشی به نتیجه طولانی بودن ایراد نداره ولی خب افراط در هر چیزی هم میتواند مضمون باشد. و از این جهت ما عبور شیوه ما شیوه تفصیل و بحث دارات معرفی است که همه آرا رو ببینیم همه مسائل رو در نظر بگیریم و به تفصیل بحث کنیم. تقریبا همه بحزار رو فصل وارد میشیم. در این دوره که امسال فهران پانزدهمین سال این دوره اصول ماست و هنوز شاید به یک سوم از مباعث اصول پرداختیم و معلوم نیست که این دوره عمر ما قد بده پایان پیدا کنی یا نه باید دعا کنید که با رضایت الهی و عنایت از تو با فهم تکلیف توفیق ادامه کار رو داشته باشیم حال میخواییم وارد بحث مفاهیم بشیم که از مسائل بسیار پر اهمیت علم اصول غلم داد میشه در هر بحثی که وارد میشیم که نگاهی میکنیم به سرفحصل های اون بحث معمولا بعد وارد بحث های محتوایی و ما میشیم در مبحث مفاهیم که خب از مباحث از بسیار مهم است و از دیرباز این از جمله مسائل و مطالب تر شده در دانش اصول بوده از اولین کتب اصولی بین عامه و خاصه این مطلب درش مطرحه حال گاهی به تفصیل گاهی به اجمال و معمولا اول مطالب صورت اجمالی وارد میشه در دانش باید تفصیل پیدا میکنیم طبق روی ما اولی جهاتی رو که جنبه های ای و پیشینه ای و پیشنگاشتگی دارد رو مطرح میکنیم تحت عنوان مقدمه و فاتحه بحث و در قالب جهاتی اونها رو بحث میکنیم اینجا هم همه کار خواهیم کرد قبل الولوج فی سلو البحث عن المفاهیم یعنی بقیه یعنی عن عدت جهات تمهیدیه یک تالی یه سلسل جهاد رو باید اول تحر کنیم این جهات اینها هستن الجهت الاولا مفهومیت المفهوم و تحدیده مفهوم شناسی خود مفهوم بحث از مفاهیم مفهوم به چه معناست؟ تعریف مفهوم چیست؟ الجهت الثانیه النزاع فی المسئل صغرویون این که نزاع یا کوبرویست یا صغرویست الجهت الثالث نشعت مبحث المفاهیم و تطورات و عبر تاریخه بحث مفاهیم از کی آغاز شد؟ پیدایش این مبحث و تطورات که در این مبحث رخ داده و هایی که در ادوار مختلف یا مقاتل و مدارس اصولی گوناگون به این مبحث دادن عنوان پسند ما و مناسب و صحیح از نظر ما کدام است الجهت الرابعه رابطت الدلال علی المفهوم ما میگیم دلالت بر مفهوم دارد ندارد این در واقع باید ببینیم که زاویه چیه با چه مبنای میگیم دلالت داره با چه مبنی میگیم نه در مفهوم دلالت ندارد یه زاویه باید داد. این نقطه خیلی مهم نیست الجهت الخام الحبیت مسئله. و معمولا در هر مطلبی که وارد میشیم یکی از نکاتی که بحث میکنیم هویت معرفتی اون مسئله است که آقا این مسئله به معرفتی و نظری از چه ماه حوییتی برخوردار است آیا یه مطلب فطریه گاهی وضعیت مسائل مطلب فطریست، عقلی محض نیست، کلامی نیست، ادبی نیست، گاهی حتی اصولی یا فقهی نیست باید مشخص کنیم که این نبحث یا مسئله که پیرامون رو بحث کنیم هویت معرفتیش چیست؟ الجهات صارت ما هو بموضع المبحث في مباحث الاصول جایگاه و وطن این مبحث در نقشه مباحث اصولی کجاست مثلا در بخش مباحث الفاظ باید بیاد در بخش مباحث مربوط به مثلا مسائل عقلیه باید بیاد در کجای اصول در ساختار اصول باید قرار بگیرد با توجه به که هراش تعریف می معلوم میشه شه که باید در کجا قرار بگیریم این جهات ششکانی است که به مسابه بحثای تمهیدی باید اجمالا بهش بفردازیم و به سرعت و به اجمال هم عبور خواهیم کرد جان فاقدش هم بله بحث در هر چون این مسئله دارای انواع چون 6-7 مفهوم رو بررسی خواهیم کرد در هر مفهوم باید بگیم فایده چیه چون ممکنی یه مفهوم رد کنیم بگیم دلات مفهومی نداره یکی رو پذیریم. اگر داشت چه نتیجه اگر نداشت چی؟ هر کدوم رو باید جدگان رو بحث کرد یعنی کل مبحث می شود گفت که چه فایده داره فایده کلیش معلومه برحال ما اگر در مجموع بپذیریم که ما چیزی به نام دلالت مفهومی داریم خب قهران در مقام استدلال برای کشف شریعت ما میتونیم به مفاهیم تمسک کنیم این فایده شید اگر کلان دلالت مفهومی رو رد کنیم یا در کم در بعضی موارد رد کنیم بعضی قبول نکنیم خب باز نتیجه تفاوت میکنیم این مقدار ولی در خصوص هر یک از مفاهیم وقت باید بگیم که اینجا در ر چه چیزی برش مترتبه و بعضی احیانا فروعی رو که برون مطلب مثلا بر پذیرش مفهوم شرط مترتبه به اونها اشابه کنیم که در زیل هر کدیم ذکر کردیم مجموعه مفاهیم رو که بدنی اصلی این مبحث رو تشکیل میده در قالب در واقع هفت فس هفت مفهوم رو بحث خواهیم کرد در قالب هفت پس مورد بررسی قرار خواهیم داد الفصل اول بی مفهوم شرد زیر هر یک از مفاهیم از جمله بررسی مفهوم شرط ما دوتا مطلب مهم رو بررسی میکنیم تقویم عدلت المثبتین و المنکرین ارزیابی دلائه عدلهی که مثبتین و قائلین به دلالت مفهومی در شرط و عدلی که منکرین دلالت مفهومی شرط اقام کردند. این اورورد ارزیابی و مورد نقادی قرار بگیره و و و ما یترتب على القولین من الفرو همین که فهمیدید فایدهش چیست با اونچه که بر هر یک از دو قول قول به اثبات قول به انکار چه احصاری برش مترتب است احیانا فروعی که بر اونها مترتبه در صورت قبول کدوم ها هستند یا نمنای از فروع فقیه مترتب است بر پذیرش دلالت مفهوم شد الفصل الثانی في مفهوم الوصف ما آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد یه تفاوتی باید بین شرط و وصف قال شد که محل قرار گرفته لغا زنجا ما یه فریدی رو خواهیم داشت ما هو بین شرط و الوصف فرق بین شرط و وصف الفصل الثالث في مفهوم الغاية الفصل رابع في مفهوم الحصر الفصل الخامس في مفهوم اللقب الفس سادس في, في مفهوم العدد و الفس سابع في مفهوم الاستثناء و دلالته على اختصاص الحکم بالمستثنامن بعضی از آزم در پایان مبحث مفاهیم پارید هنبیهات رو گووردن مثل مرحوم مرزای ناهی در فوائد رسول به تقریر محقق کازمیشون چند نکتر و تحت انوان تنبیهات اووردن بعض دیگر از برگان هم همکار رو کردن که قهران ما هم همکار رو در پایان مبحث مفاهیم خواهیم داشت. خب جهت اول چی بود؟ جهت اول مفهومیت کلمات مفتاحی است یه نکته زبانی ارز بکنم در عربی معاصر این نسبت و که در آخر کلمه اضافه میکنن مثل مثلا مفهوم رو میگن مفهومیت میشه گفت مفهوم کلمات المفتاحیه معنای کلمات مفتاحی یا مفهوم المفهوم اما وقتی اینی یا و تا رو اضافه میکنن چیزی شبیه به کلمه شناسی که در آخر, آخر کلمات فاسی ما میریم مثلا چطور میگیم مفهوم شناسی مفهوم شناسی یا مفهوم شناختی بصورت وصح یا مستر وقتی کلمی مفهوم رو مثلا میگیم مفهومی میشه مفهوم شناسی یا مفهوم شناختی به صورت مستر احیان مفهوم شناسی یا به صورت وصح مفهوم شناختی این رو در عربی معاصر این جهت رو در واقع راعیت میکنن مرحوم اخوند در شفای مفهوم رو اینجور تعریف کرده ایشون فرمودن است که این المفهوم کما یا و هر اطلاقه هو عباره تون عن حکم انشائی او اخباری است خصوصیت المعنی لذی اورید من اللفظه به تلک الخصوصیه ولو به غریلت الحکمه و کان یلزمه لذالک و فقه فل ایجابه و سلب او خالفه فمفهوم انجا اک زیدون فاکرم هم مثلا لو لبه اگه قائل به مفهوم داشتن شرط انجا این این جمله شرطی باشیم این جمعه زیدون فکر ما لوقی لبه شون ما داریم فیلن نواره تا خوندو میکنیم قضیتون شرطیتون بتون به شرطها و جزایها ها این جمعه زیدون فکر ما یعنی اگر نیمد اکرام نکن شرط و جزاش میشه منفی اگر نیمد نکن این کار رو اکرام نکن بله فرموزن که لوقیله به قضیتون شرطیتون سالبتون به شرطها و جزائه ها لازمتون للقضیت شرطیه الاتی تکونو معنى القضیت لفظیه خب قضیه یه لفظیه اینجا که جدیتون فکر امهو منطوقشیه منطوقشیه میگه اگه زیدو بد کن پس اگه الان وارد شد به شما آمد دفتر شما آمد منزل شما آمد محل کار و محسد شما آمد بد اکرام کرد این معنای منطوقشه ولی یه معنای حلازمی داره یه خصوصیتی در جمله هست در این قضیه که اون خصوصیت یه معنای لازمی دارد و اون اینه که خب اگر نیومد چی؟ بهرم باید بگیم اگر نیامد اکرامم اکرام هم نکن بلو به تحبیری اصلا نمیشه اکرام کرد بختین نای که نیست که اکرام میشه کنیم حالا ممکن نگیم نای ولی یه زنگ داریم ازا تشکرم کردیم که خیلی ممنون که نای تو توی شهرات کورونایی مثلا حال تستقیعه خصوصیت المعنه الذي قریده بیم من اللفظ معنای منطوق مدلول متابقی لفظ خود لفظ وضع شده ولی دلت بر این معنا معنای منطوق ها معنای متابقیست تستبیم خصوصیت المعن الادی اریده من اللفظ به تلکل خصوصیه ولو به قرید الحکم ولو این در واقع به قرنی حکمت این خصوصیت رو بتونیم دریافت کنیم و کان یلزمه لذالک لازمتون للغضیه تشارتیت لتك... اشتباه کردیم ورد لازمتون للغضیه تشارتیت لتی تکون معنی لغضیه تلفزیه و تکون لها خصوصیتون به طریقا خصوصیت کانت مستلزمت الله یه خصوصیتی این عبارت این قضیه شرطیه داره اینجا اکا زیدون و اکرمه یا خصوصیتی داره این خصوصیت در واقع لازمه ای دارد اون لازمه میشه معنای مفهومی دلالت مفهومی اون میگی. در این که آیا این تعریف یا این تبیین از مفهوم مفهوم معنای مفهوم معنای دلالت مفهومی و اصطلاح دقیق دقیق نیست خب بحثیات شده بزرگان وارد شدن بعضی اشکالات و ایرادها و این وارد کردن بعضی دفاع کردن بعضی تصحیح کردن ولی خب خیلی نیازه به ترقف در چون این بحث این نیست بالاخره باید معنای رو فل جمله پذیرفته رو بپذیریم و عبور کنیم یعنی یه نزاعی نیست که چندان برش اثر مهمی از نظر اصولی یا فقهی برش متردد باشه حالا معنای مفهوم هر چیه اجبالا میگم آقا حالا هرچه هست بفرمید معنای مفهوم هر هرچیست هرچه که باشد آیا چونین معنایی یا چونین دلالتی وجود دارد یا ندارد بس بساری این آیا دلالت مفهوم داریم یا نداریم من دارم تکرار میکنم دلالت مفهوم داریم یا نداریم غرض دارم از این تکرار یعنی دعوا بر سر که چون این دلالتی وجود دارد یا وجود ندارد. بحث بر سر وجوده چون این است. که اگر پذیرفته وجود دارد یه برقی مسئله حله. یعنی چی؟ یعنی کبراش بیا روش. اگر دلالت مفهومی داریم کبرای این مسئله چیه؟ حجف زواهر. معنیش این میشه که پس بنابراین اگر دلالت دارد پس حجت است پس باید ما اعتناق کنیم به دلالت مفهومی یعنی نزا بر سر وجود دلالت و عدم وجود دلالته نزا بر سر حجیت عدم حجیت نیست اگر بپذیریم که دلالتی به نام دلالت مفهومی وجود داره یه حجیتش میاد چون میشه جز زواهه و زواهه هم در جای خود اثبات شده که حجیت است نزا سغروی است در واقع نه کبروی خب حالا یه توضیحاتی رو بعد از این بیان برماخون که ما هم به همین بیان قناعت میکنیم و رد میشیم خیلی توقف نمی کنیم. که غالبا هم بعد از برماخون اون که پذیرفتند این توضیح رو بیشتر از اوناییان که نفت کردن ما رد میشیم چند تا نکتر زیلین باید عرض میکنیم یک مفهوم صفت معناست یعنی <تصح> <تصح> چی؟ یعنی مفهوم صفت لفظ نیست لفظ معنای مفهوم رو تولید نمی‌کنه لفظ یه معنای منطوق رو تولید میکنه اون معنای منطوق در واقع یه معنای دیگه‌ای رو یه معنای ثانوی رو سبب میشه پس بنابراین وقتی داریم بحث میکنیم که آقا مثلا مفهوم چی مفهوم لفظ منظورمون نیست ها یعنی این مفهوم وصف لفظ نیست و حتی مفهوم وصف دلالت نیست ولی میگیم دلالت مفهومی میگیم دلالت مفهومی میگیم دلالت مفهومی دلالت منطقی ولی در واقع اینجا وصف به حال متعلقه ولی دلالت رو داریم موصوف میکنیم به مفهوم میگیم دلالت مفهومی اما در واقع این مفهومی صفت دلالت نیست چون این دلالت معنا ایجاد میکنه و مفهوم در واقع وصف معناست در واقع این وصف به حال متعلقه نه به حال خود دلالت پس منوبر این مفهوم پیوند مستقیم با لفظ ندارد این خود لفظ وضع نشده الان مبناها فعلا میگیم از نشده است برای دلالت به معنای مفهوم بلکه یه معنایی داره که اون معنا خصوصیتی دارد که اون خصوصیت لازمی دارد که اون لازم میشه این معنای مفهومی کما این که این وصف وصف مفهوم به اصلا وصف دلالت هم نیست ما یه جور دلالت مفهومی داریم احیانا بلکه ما در با سرکارمون با معناست نقطه دوم اینکه مدلول مفهومی مفهوم آخون گفته خب ما از این جور منتی می کنم از این تعریفی کردیم از این توصیفی که وصفی کردیم از معنای مفهوم و مفهومی مفهوم بیان کردیم این می شود که مدلول مفهومی و معنای مفهومی حکم غیر مذکوره این حرفو چرایشون زده؟ به جهت اینکه که که خوب از اصولیون عامه بخوب جزی پیرکسمتانه علم اصول به حساب میاد و حال آراء فراهان خاصی داره او گفته که مدلول مفهومی در واقع حکم برای موضوع غیرمذکوره میگه مفهوم دلالات مفهومی ها. حکمی رو میخواد بیان کنه که موضوعش در عبارت در لفظ در جمله بیان نشده یک نشده. پس بنابراین این دلالت مفهومی میخواد حکمی را برای اون موضوعی که در مت نیست مشخص کنه. من رو ما خون دقت کرده میگه نه. در لالت مفهومی حکمی رو برای غیر مذکور که در لفظ و بیان نمیخواد بکنه چرا؟ برای اینکه گاهی در لفظ دقیقا موضوع ذکر میشه در این حال بس بس اینکه این در مفهوم داری یا نداری موضوع حکم ذکر میشه خود حکم ذکر میشه ما وقتی میگیم مثلا فرض و که این جا اکر زیدون فکرم ها ما هم زیدو رو گفتیم هم اکرام رو گفتیم هم موضوع رو ذکر کردیم هم حکم رو ذکر کردیم و اگر هم بگیم اکرام نکن موضوع و محل حکم کیه؟ زید باز زید اکرام نکن حکم عدم اکرام زید رو میخوایم بگیم اگر شرط مفهوم داشته باشه با هم که به مفهوم شرط میگه آقا زید اگه نیاد این زید تو اکرام نکنه همین زیدی که اسمش اومد توی بارد پس این مذکوره داریم حکم موضوعی که مذکوره داریم معلوم می‌کنی. پس حرف آقای عزادی غلطه اشتباهش کجاست؟ اشتباهش اینه عزودی بین این که آیا مفهوم داره حکم موضوع غیر مز رو بیان میکنه یا حکم غیر مسکور در م رو بیان میکنه. حکم غیر مسکوور در عل میکنه نه حکم موضوع غیر مسکول. این هم یه نکته یعنی اون حکمی که در انجا متن نیست اینجا اک زیدون فکره حک که تو متن نیمت که اگه نیمدم نایم ک را نکن این نیمتدید این حکمه و حکمی که ذکر نشده با مفهوم می‌خواد حکم ذکر نشده رو بیان کنیم پس حکم غیر مذكور رو میخواد مفهوم بیان کنه نه حکم برای اون موضوعی که ذک نشده حکم برای غیر مذكور نیست بلکه خود غیر مذكور واسه خود حکمه حکم ذکر نشده رو میخواد بیان کنه اگر مفهوم بپذیریم حکم ذکر نشده در متن رو ما میتونیم استفاده کنیم از این عبارت در حالی که در متن نیامده بلو برای موضوعی که در مثل آمده زید دعوا بستر زیده اکرام بکنیم یا نکنیم پس موضوع حکم ذکر شده خود حکم ذکر نشده و اون عدم اکرامه زید در سات که نیاد نکته سبومی که اینجا میتونیم اعز بکنیم این که چه نسبتی هست بینه معنای منطوق و معنای مفهوم با توجه به تعریف که از آخون نقل کردیم و اجمالا پذیرفتیم ظاهرا معلوم شد چی بود؟ بود که گفتیم که معنای مفهوم در واقع ملازمه یه خصوصیتیه که در معنای منطوق وجود داره پس پای ملازمه در کاره تلازم در کاره به نتیجه در واقع معنای مفهوم معنای تلازمیه معنای منطقه یعنی بینی معنای مفهوم با معنای منطقه ملازمیه است، ولو با واسطه چون معنای مفهوم گفتیم چیه؟ گفتیم ملازم خصوصیتیه که معنای منطوق داره پس منو برای این نسبت بینای مع... معنای منطوق معنای, ملزوم... معنای مفهوم چی شد نسبت دلات التضامی و تلازم ولی بعضی اشتباهان گفتن تزمونیه گفتن انگار به نحوی در ضمن معنای منطوق معنای مفهوم ذکر شده است ولی اینطوری نیست ولی که مثلا در مثل مثال فسائمت زکاتون نه موضوع شده نه حکم ذکر شده و المعلوفه جزئی از از سائمه نیست زکاتمون تعلق بگیرد یا نگیرد بر معلوفه چرا بگیرد با از ما در واقع یک استنبات التزامی می‌کنیم، پس بر این نسبت بین مف... معنای مفهوم و معنای تو هم نسبت التزامی و معنای تلازمی قلم دارد میشه و یه نقطه دیگر هم بگیم که است و اون این که بعضی گفتن اگر معنای مفهوم معنای التزامیه دلالت بر معنای التزامی فرع بر دلالت بر معنای مطابقی. چون غالبا باید حالت مطابقی دلالت بکنه بعد از او عبور کنه اینو پل قرار بده عبور کنه به معنای ملازمه با او رو هم برسونه به معنای ملازمه با او هم دلالت کنه پس بنابراین این معنای تلازمی فرع بر معناي متابقی است تطابقی است همطوری که معنای تزمونی هم فرعه بر معنای تطابقی است برای اینکه دلات بر کل اول انجام میشه بعد از اون ما نقب میزنیم دلاتی جز هم میفهمیم میگیم شبستان خراب شد میگن آقا کو که سر جاشه پایورش هم پسایجاش میگه منظورم که این دیوارش خراب شد این پنجرش خراب شد این ما از این معنای کلی رو اول میفهمیم بعد اینو پول قرار میدیم و میگیم دلالت بر معنای جزئی داره. ولی من درم تزمونی میگم دیگه میگم همونطوری که دلالت تزمونی هم مثل دلالت تلازمی متأخره و وابسته به معنای منطقه میخوام میگم هر در هر دو جا اینجوریه حالا ما مقایسه نمیکنیم. کنیم یه لحظه غفلات کردید من ارزایی بود که اینایی که میخوان بگن نمیخوان بگن که اصلی مطلبی که میخوان اینجا بگیم اینه من دارم رو میگم اصل مطلبی اینه بعضی گفتن که آقا دلالت متابقی منطوق اقوی از دلالت مفهومیه دنچه اگر دو دلیل داریم که یکی به دلالت مطابقی و منطوق برای یه حکمی دلالت داره یه دلیل دیگه داریم که به دلالت مفهومی دلالت برای یه حکمی داره تقدم با اون حکمی می شود که به دلالت منطوق استنباد شد چون اون اقباس. چرا چون اون متابقه موضوع لحه. این تازه تلازمه یا تزمونه مثلا من در واقع مبنای این حرف رو میخوام بزنم که این که چون این ادعایی شده که دلالت منطوق اقوا از دلالت مفهومه بسا به این استدلال میشید میگه نوگا دلالت مفهوم متاخره دلالت منطوقه خب پس به من این منطوق اصله پس اون است این حرفو زدن ولی من اعزم کنم که این محل تحموله این باید بحث کرد که یا واقعا دلالت مطابقی و منطوق عقبا از دلالت مفهوم یانه اما خب کسی استدلال کنه بگه به این دلیل که اصلا معنای مطابقی و منطوق موضوع اون نه است اصل کل اسکل نسبت به جز اصل اس نسبت به ملازم پل اگر دلالت مطابقی و منطوق نباشه اصلا نه به تلازم نه به تضمن پل بزنیم پس او اقواست ولی ظاهر قضیه نیست که این دقیق نیست این هر با این اطلاقش مطلقا اشکال داره بگیم مطلقاً اقواست نه یا جای ممکن دارد تز... تلازمی اتفاق خیلی اقوا باشد ولی ظاهر اطلاق شما داریم میگیم خیلی تعمل این هم نقطه چهارم زیل مفهوم شناسی کلمه مفهوم صدی اللہ محمد و علیت طیب Gracias.